حکایت هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده، مگر وقتی که پایم بره مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم، به جامع کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت، سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بیکفشی صبر کردم. مرق بریان به چشم مردم سیر کمتر از برگ تر برخان است. من را دستگاه و قوت نیست، شلقم پخته مرق بریان است.